خون دادن خوبه این که به سلمان کمک بکنید خوبه اما گرفتن پول از جائز خون دادن جایز نیست چون که خون نجس هست و خون حرام هست خوردنش فروختنش اما به خاطر بیماری و علاج استفادهش جائز هست اما خون دادن مثل به اصطلاح حجامت نه حجامت چیز دیگر است و اون شفایی که در احادیث سوماری در حجامت هست